سوره صا والقرآن بل الذين كفروا فی بنام الله كه بخشایندهبو با رحمت است. قسم به قرآن پنداموز که کافران همواره گرفتار قدرت طبی و اختلاف هند. چه مردمان بسیاری را قبل از آنها علاق کردیم در حالی که فریاد میکشیدند و گریزگاهی نداشتند آنها تعجب کردند که چرا پیامبر هشدار دهنده از جنس خودشان به سراغشان آمده و کافران گفتند این پیامبر جادوگری دروغ گوست آیا او پیامبر، به جای این همه خدایان، خدای واحدی قرار داده است. این واقعا چیز عجیبی است. بزرگان آنها رفتند و به مردم گفتند بروید و محکم به خدایانتان بچسبید. این چیزی است که اراده شده است. ما چون این توحیدی را حتی از آئین واپسین گرایان ناشنیده‌ای این فقط یک دروغ است چرا قرآن از بین همه ما فقط بر او نازل شده است نه آنها از وحی من در شک و تردیدند نه هنوز عذاب مرا نچشیدند شاید هم خزائن رحمت پروردگار مدترمد و بخشندد نزد آنهاست که انقدر گستاخی می یا شاگرد فرمان روایی آسمان ها و زمین با آنچه میان آنهاست متعلق به ایشان است اگر چنین است با نردبانی به آسمان بروند و جلوب وحی را بگیرند اینها فقط لشگری شکست خورده از احزابند قبل از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت بودند پیامبران را تکذیب کردند همچنین قوم سمود و قوم لود و مردم عیکه اینها هم گروههایی بودند که پیامبران مرا تکذیب کردند. همه اینها حقانیت پیامبران را تکذیب کردند. سرانجام نیز گرفتار عذاب الهی شدند. اینها در حقیقت منتظر چیزی نبودند جز سیهی مرگبار سیهی که راه بازگشتی برای کسی باقی نمیگذارد آنها به استخزامی میگفتند پروردگارا عذاب ما را هرچه سریعتر، تر آن هم قبل از روز قیامت بفرز بران که میگویند صبر داشته باش به خاطر بیاور، بنده داوود را که صاحب قدرت و پیامبری توبکار بود ما کوها را در اختیار او گذاشتیم تا هر شامگاه و سوگاه تو امان تصویح خدا را بگویند پرندگان را نیز در اختیارش گذاشتیم تا با هم تصویح خدا بگویند بدان که همه اینها به سوی او باز میگشتند فرمان را مستحکم کردیم و به, به او حکمت و مقام داوری عادلانه عطا کردیم آیا؟ خبر آن شاکیان هنگامی که از دیوار مهراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است آنها بر داوود وارد شدند به طوری که داوود از آنها ترسید گفتن نترس ما دو شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ظلم کرده است اکنون بین ما به حق قضاوت کن و خلاف انصاف و ادالت مگو و ما را به راه درست راهنمایی کن این مرد برادر من است که 99 میش دارد و من فقط یک میش دارم میگوید این یکی را هم باید به من باگذار کنی و در بیان و سخن گفتن نیز از من قوی تر است داوود گفت او با مطالبه میش تو برای آنکه به میش های خود اضافه کند وطعا به تو ستم نموده است بسیاری از دوستان نیز نسبت به یک دیگر ستم می کنند مگر آنان که به حقایق ایمان دارند و عمل نیک و شاگسته است هرچند این گونه افراد تعدادشان اندک است داوود فهمید که ما او را با این ماجرا آزموده ای و بلزان که از طرف دیگر نیز ماجرا را سوال کند به زاوت عجورانه کرد از پروردگارش طلب آموزش کرد و به سجده افتاد و توبه نمود ما او را آمرزیدی، زیرا او مقرب درگاه ماست ما و عاقبت به خیر است ای داوود ما تو را جانشینی بر روی زمین قرار داده‌ای پس بین مردم به حق حکم کن و از هوای نفس تبعیت مکن که از راه نجات بخش الهی منحرف می‌گردی و کسانی که از راه خدا منحرف شوند به سبب فراموش کردن روز حسابرسی عذاب سختی خواهند شد ما آسمان ها و زمین و آنچرا میان آنهاست به باطل خلق نکرده ایم. این گمان است که به حقایق ایمان ندارند پس وای بر بی ایمانان از آتش دوزخ. آیا تصور می کنید آنهایی را که به حقایق ایمان آوردند و عمل نیک و شایسته دارند با تبهکاران روی زمین همانند قرار می دهیم؟ و یا حرمت گزاران حریم الهی را با فاسدان گنهکار یکسان می <تصفيق> این انزلناه الیک آیاته این کتابی است برکت که بر تو نازل کرده ایم تا مردم در آیاتش تدبر کنند و اهل خیر از آن پند بگیرند ما سلیمان را به داوود عطا کردیم چه بنده خوبی بود همواره رو به خدا داشت بیا دار آن زمان که انگام عصر اسبان تندروی را به او عرضه داشت سلیمان گفت حب و اشتیاق و اسبان مرا از یاد پروردگارم غافل کرد و به سبب آن اسبان از دیدگانش پنهان شدند سپس گفت آن اسبان را برایم بازگردانی آنگاه بر ساقها و گردن آنها دست کشید ما سلیمان را آزمایش کردیم و او را چون جسدی بر تختش افکندیم آنگاه او به درگاه خداوند توبه نمود گفت پروردگارا مرا بیامرز و حکومتی به من عطا کن که در خور احدی بعد از من نباشد زیرا تو بسیار بخشنده ای ما باد را در اختیار او قرار دادیم تا به دستورش به نرمی جریان یابد و هر جا که او بخواهد بوزد و هر بننا و از شیاطین را در اختیار او گذاشتیم حتی گروهی دیگر از شیاطین را در حالی که در گل و زنجیر بودن فرمان بردارش کردیم و به او گفتیم این عطای ماست بر هر که خواستی ببخش و یا از او امساک کن بر تو حسابی نخواهد بود زیرا او نزد ما مقرب بود و آقبت بخیر ایوب را یاد کن آن هنگام که پروردگارش را ندا داد که شیطان به من رنج و عذاب رسانده است به او گفتیم پای خود را بر زمین بزن این چشمه ای از آب خنک برای شست و شو و نوشیدن است و خانواده اش را به او برگرداندیم و همانند آنچه را از دست داده بود به او عطا کردیم تا هم رحمتی از سوی ما باشد و هم پندی برای خردمندان به او گفتیم دسته ای از ساقه گندم را برگیر و به همسرت بزن و قسم خود را مشکن زیرا ما او را بردبار یافتیم چه بنده خوبی بود و بسیار روی به خدا آورد بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که قدرتمند و ساقب بسیرت بودند یاد کن ما آنها را به خالصترین وحش خالص کردیم و آن چیزی نبود جز یاد آخرت زیرا آنها نزد ما جز برگزیدگان و نیکان هستند یاد کن اسماعیل و یسع و زلکفت را که همه از نیک مردانند این یک پند است. و برای حرمت نگاهداران حریم الهی عاقبت بخیری است در حاق بهشت بر روی آنها همواره باز است بر روی تخت های بهشتی تکیزدن و هر میوه و نوشیدنی گوارا در اختیارشان است در کنار آنها پورانی همسن و سال است که نگاهشان سرشار از محبت و وفاست ما الحساب. این الحساب هذا لرزقنا ما له من این همان چیزی است که به آن بعد داده شده ای همان این روزی ماست که هرگز تمام شدنی نیست و اما برای طغیانگران از عوامر الهی بدترین محل بازگشت است و آن است که در آن وارد می شوند و چه بد بستری است این جهنم و این همیم و است چرک و خونابهی که در کار بده است که باید آن را بچشند و غیر از اینها مجازات همانند آن را باید بچشند این گروه رهبران گمراهی با شما در آتش دوزخ وارد می شوند خوش آمدشان مباد که همگی به آتش میفتند آنها به رهبران گمگاهشان گوگند خوش آمد مباد شما را که این عذاب را در حقیقت شما برای ما فراهم کردید چه بد قرارگاهی است این جهنم و باز گوگند پروردگارا هرکس کس کار ما را به اینجا رسنده عذابش را از آتش زیادتر کن و نیز گوگند چرا افرادی را که جزو اشرار میپنداشتیم در جهنم نمیبینیم آیا آنها را بی جهت مسخره میکردیم یا اکنون دیده ها آنها را نمیبینند؟ اینها واقعیات گفتگوهای جهنمیان است. بگو من فقط دهندم و هیچ خدایی جز خداوند واحد قهار وجود ندارد. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست پروردگار قدرتمند و بسیار آمرزنده است. سبحان الله، سبحان الله. بگو این همان خبر بزرگ است که شما همباره از آن روی برمیگردان من از عالم بالا آن هنگام که فرشتگان در باره خلقت آدم مخاصه میکردند، آگاهی نداشتم تنها چیزی که به من وعی می شود، این است که من حشداردهندهی آشکار هستم انگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت می بشری از گل بیافرینم پس آنگاه که آن را نظام بخشیدم از روح خیش درو دمیدم گفتم اکنون همه سجدهش کنی همه فرشتگان به سجده افتادند. مگر ابلیس که تکبر کرد و از کافران بود. خدا گفت ای ابلیس چه چیز باعث شد تا موجودی را که با دستانم خلق کردم سجده نکنی؟ آیا تکبر کردی یا مقام بلندی داشتی؟ ابلیس گفت من بهتر از او هستم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل. خدا گفت از اینجا و این مقام بیرون شو که تو مترودی بدان که تا روز قیامت نفرین من بر تو باد ابلیس گفت مرا تا روزی که انسانها برانگیخته ایخته می شوند ده خدا گفت تو از مهلت داده شدگانی ولی تا روز و زمان معین، ابلیس که با این امان نام خیالش راحت شد گفت به عزتت سوگند که همه آدمیان را گمراه خواهم کرد مگر آنها که از بندگان رایی یافته تو هند خدا گفت قسم به حق به حق میگویم که جهنم را از تو و از تمام کسانی که از تو پیروی کنند پرخان کرد بگو ای پیامبر من از شما به خاطر انجام رسالتم مزدی نمیخواهم و من از متکلفین نیستم این قرآن فقط پند نامی برای جهانیان است و خبر حقانیت آن را بعد از مدتی درخواهید یافت این هو ایلا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العلی العظيم راست گفت خداوند بلند مرتبه از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم